صحو کردن که باید چیکار کنیم که گناهانی مانند عجب و غرور و تکبر رو از بین ببریم یکی از کارهایی که برای فرار از عجب توصیه شده در گفتار امامان ما علیهم السلام این است که بعد از هر کار خیلی شکر کنیم از خدا تشکر کنیم معنیش این هست که خدای اگر من توفیل به کار خوبی پیدا کردم این از توست نه از خودم بر قدرت من نبوده تو انایت کردی شکر کردن بعد از هر کار خوبی هر عبادتی نشون میده که خدای متعال این خیر رو به ما داده علت این که عوض میگیری ما رو یه دلیل عمدش همینه فکر میکنیم از خودمونه من توانستم این کار رو بکنم چکیه به خودمون داریم شیطون جاپا پیدا میکنه این حالت رو مندازه تشکر از خدا لبزی و عملی انشاءالله عجبه پیش نمیاره اگر شاید بگم باشه از روی می این شوقه برای مخاطب پیش اومده که به صورت پیشفرز یعنی باید خودمون رو بد بدونیم نه بعد از خدا تشکر کنیم و مراقب باشیم در ساعت بیداری اگر کار خوبی ازمون زد خدا رو تشکر کنیم اگر قفلتی کردیم استخبار کنیم این مراقبه نشونه اینه که خدای من ضعیفم بعد مراقب خودم باشه میدخم دست اطبا خطا نکنم یعنی ضعیف هم خدای من کمک کنم این باعث میشه که آدم خود بزرگ بین نمیشه چون همهش خودش رو در مقابل خدا ضعیف میبینه